فصل سالها گذشت فصول اولیه آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپری شد زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوبر و بنجامین و موزز و چند خوب دوران قبل انقلاب را به خاطر نداشتند موریل مرده بود، بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند جونز هم مرده بود در یکی از بیمارستان های معتادین به الکل درگذشته بود سنوبال فراموش شده بود باکسر نیز جز از ذهن معدودی که او را میشناختند فراموش شده بود کلوور مادیان پیری شده بود مفاصلش سخت و چشمش در شروف آب آوردن بود دو سال از سن تقاعدش میگذشت ولی در واقع تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشست نشده بود مدتها بود که دیگر صحبت دادن گوشهای از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود ناپ اون خوک نر رسیده شده بود با 125 کیلوگرم وزن سکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشمهایش باز می شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییر نکرده بود جز آنکه اطراف پوزش خاکستری شده بود و بعد از مرگ باکسر عبو سر بود و کمتر حرف میزد. زد هرچند جمعیت به آن میزانی که روزهای اولیه می میرفت افزایش نیافته بود ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که انقلاب برایشان حکم افسانه دوری را داشت که دهن به دهن با آنها رسیده بود یا حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوورس اسب دیگر داشت از پای خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند خوب کار می‌کردند و رفقای خوبی بودند ولی احمق بودند هیچ کدام در الف از حرف ب جلوتر نرفتند هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانگری به آن گفته میشد، میپذیرفتند. مخصوصاً اگر کلوفر میگفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند، ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشون شده باشد. وضع مزرعه پررونختر و منظمتر از پیش بود حتی با خرید دو قطعه زمین از آقای پلکینگتن وسیعتر هم شده بود آسیاب بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای یک ماشین خرمنكوبی و ینجه برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود بیمپر صاحب تک تکاسبهای شده بود ولی از آسیاب هرگز به منظور تولید نیروی برق استفاده نشد از آن برای آسیاب کردن غله استفاده میشد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگی پرتجملی که زمانی سنوبال ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی طویله مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و سه روز کار در هفته هیچ صحبتی در میان نبود ناپلون گفته بود این حرف ها برخلاف وصول حیوانگریس و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه به تحقیق قنیتر شده بود بدون اینکه حیوانات به از خود خوکا و سکا قنیتر شده باشند شاید این باز تا اندازه به این دلیل بود که تعداد خوک ها و سکا زیاد بود البته اینطور نبود که آنها اصلا کار نکنند به هر حال به روال خودشان کار میکردند همونطور که سکویلر توضیح میداد و هرگز هم خسته نمیشد اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت نوع طوری بود که حیوانات جاهل در از فهم آن عاجز بودند سکویلر به حیوانات میگفت که مثلا خوک ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده گزارهند پیش نویس و اساسنامه میگویند فعالیت کنند یعنی برک های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه میکردند و میگویند فعالیت میکنند و وقتی کاملا از نوشته پر شد آن را می‌سوزاندند سکویلر میگفت سکویلر میگفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است اما به هر حال از کار خوک ها و سکا که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتای خوبی داشتند مواد غذایی تولید نمیشد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود همان بود که همیشه بود. معمولا گرسنه بودند، روی مشتیکاه می‌خوابیدند، از استخر آب می‌نوشیدند، در مزرعه کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند، گاه سیر می‌کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه. ولی چیزی به خاطرشان نمیامد و میاری نداشتند که زندگی کنونی خود را با آن مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام سکویلر بود که به طور ثابت نشان میداد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاین حل بود به هر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند تنها بنجامین انجام بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می داند که چیز همه چیز همان هست که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند زندگی نه بدتر می شود نه بهتر و می گفت گرسنگی و مشقت و هرمان قوانین لایت غیر زندگی است با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند حتی برای یک لحظه هم احساس افتخارامیز و امتیاز عضر قلعه حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعی آنها تنها مزرعی بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می همه حیوانات حتی جوانترین ترین و تازه واردینی که از پنج شش فرسخی به آنجا آورده شده بودند از این مطلب با اجاز آمیخته به تحسین یاد میکردند. وقتی صدای شلیک را میشنیدند و یا پرچم سبز را بالای دکل در احساس می میدیدند وجودشان مالامال از غرور میشد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته اخراج جونز صدور هفت برمان و جنگهای بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می میشد هنوز خواب و خیالهای ایام گذشته را در سر میپروراندند هنوز حیوانات به های میجر به رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند روز این اتفاق خواهد افتاد شاید آن روز در آتیه نزدیکی نباشد شاید در خلال زندگی هیچی کس حیوانات زندگی کنونی نباشد ولی آن روز می رسد هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوشه و کنار مخمیان زمزمه می شد هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند ولی تمام حیوانات آن سرود را میدانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند اگر گرسند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار میکنند، برای خودشان است و هیچ حیوانی بین آنها نیست که روی دو راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمیکند و همه چهارپایان برابرند روزی در اوایل تابستان سکویلر دستور داد که گوسفندان همراه او به قطعه زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درختان بود بروند. روسندان تحت نظر سکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب سکویلر خود به مزرعه برگشت چون هوا گرم بود به گوسفندان گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندان یک هفته تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند سکویلر بیشتر وقتش را به آنان میگذراند و میگفت دارد با آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد و لازم است این کار در خلوت و تنهایی صورت گیرد شب با صفایی بود گوسفندان تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیات شنیده شد حیوانات حراسان سر جای خود مکس کردند صدا صدای کلوور بود کلوور باز شهه و حیوانات جملگی چهار نل به داخل حیات هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود دیدند خوکی داشت روی دو پای عقبش راه میرفت بله خود سکویلر بود مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جزسهٔ سنگین خود را در آن وزن نگاه دارد کمیناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان حیات مشغول قدم زدن بود. احزی بعد صف طویلی از خوکان که همه روی دو پاه راه می‌رفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت بعضی از بعض دیگر بیشتر بود. یکی دوتایی به اندازه کافی استوار نبودند. مثل این بود که حاجت به اصا دارند ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و دست آخر اوی هولناک سکا و صدای زیل جوجه خرس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و در حالی که سکها اطرافش را وجسخیز می‌کردند با اونقوهت به چپ و راست نظری انداخت و بیرون آمد شلاقی به دست داشت سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفت حیوانات مبهود و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک‌ها که آهسته در حیات راه می‌رفتند نگاه می‌کردند گویی دنیا واژگون شده بود وقتی اثر ضربه اولی از بین رفت و لحظه رسید که با وجود وحشت از سکها و با وجودی که عادت کرده بودند که لب شکایت انتقاد نکشایند گمان این می‌رفت که اعتراض کنند ولی یک مرتبه تمام گوسفندان هم صدا بق چهار پا خوب دو پا بهتر چهار پا خوب دو پا بهتر چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند، این بر این نقیقه تمام بدون وقت ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از بین رفته بود چون خوک به ساختمان برگشته بودند. بنجامین جمین حس کرد به شانش خورد. سرش را برگدان کلوور بود، چشمان سال خودش از پیش هم کم نوتر شده بود و بیان که کلمه بر زبان راند با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته تویله بزرگ جایی که هفت فرمان نوشته شده بود برد. یکی دو دقیقه آنجا ایستاد و به غیرندود و نوشته سفید زنگ روی دیوار خیره شد بالاخره کلوور به سخن آمد و گفت دید چشمم کم شده حتی زمانی هم که جوان بودم نمیتوانستم نمی نوشته ها را بخوانم ولی به نظرم میآید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته بنجامین بگو ببینم حرف فرمان مثل سابق است برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش کول با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود همه حیوانات برابرند اما بعضی برابرترند پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک خوکها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه میخوانند دیگر وقتی ناپل آن را می که قدم می زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی و وقتی خوک ها لباس های جونز را از قفس بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپل آن با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون می آمد و ماده سگولیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روت یکشنبه یک شمبه می پوشید برتن کرد تعجب نکردند. یک هفته بعد تعدادی درشگی تک اسب وارد مزرعه شد. حیعتی از زارعین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بودند همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از همه چیز مخصوصا از آسیاب بادی تحسین کردند حیوانات با کمال دقت سرگرم ویجین علف از مزرعه شلغم بودند حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمیدانستند که از خوکها بیشتر حراسانند یا از آدمها. صدای خنده آواز از ساختمان بلند بود. سر و صداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. میخواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار بشر و حیوان در شرایط مساوی کنار هم هستند، چه می‌گذرد. همه سینمال و تا آنجا که ممکن بود بی صدا به باغ رفتند. دم در بحشت زدن مکس کردند اما کلوبر جلو افتاد حیوانات آهسته دنبالش رفتند آنها که قدشان می دسید از پنجره داخل اتاق را نگاه می کردند. آنجا دور میز دراز شش زارع و شش خوک ارشد نشسته بودند ناپل آن در صدر میز نشسته بود به نظر میرسید که خوک‌ها در کمال سهولت صندلی نشستند، پیدا بود که سرگرم بازی ورق بودند و موقتاً از ادامه آن دست کشیدند تا گیلاسی بنوشند سبوی بزرگی دو گشت و پیمانه دوباره از آب جور لبالب شد، هیچ کس متوجه غیافه های زده حیوانات در پشت پنجره نشد آقای پیلکلینگتن مالک فاکس بود گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آنکه گیلاس جن را بنوشند خود فرض می که چند کلمه به عرض برساند گفت برای شخص او و به طور قطع برای همه کسانی که شرف حضور دارند جای منتهای مسرت است که می دوران طولانی عدم اعتماد و سوء تفاهم سفری شده است زمانی بود خود او و یا حاضرین خیر بلکه دیگران اگر نگویی به دیده باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم قلعه حیوانات نگاه می‌کردند. حوادث تأثرآوری پیش آمد، افکار غلطی پیدا شد. تصور می‌رفت که وجود مزرعه‌ای متعلق به خوکان و تحت اداری آنها غیرطبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زار این بدون مطالعه و تحقیق چنین فرض می‌کردند که در چنین مزرعه‌ای روح عدم انضباط و فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود نگران و مضطرب بودند اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است امروز خود او به همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کردند و در آن با چشم خیش چه دیدند نه فقط تمام وسایل امروزی بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشخ هزار این دنیا باشد با اطمینان کامل میتواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار میکنند و کمتر میخورند در واقع او و سایر دوستانی که امروز از قلعه حیوانات دیدن کردند مصممند نحوه کار آنها را در بسیاری از موارد در مزارع خیش به کار بندند گفت به بیانات خیش با تأکید بر احساسات دوستانه که بین قلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه میدهد بین خوک و بشر هرگز استکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود داشته باشد پشمکش و اشکالات آنان همه یکیست مگر مسئله کارگر در همه جای یکسان نیست پیدا بود که آقای پیلکینگتن قصد دارد ای بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده است برای یک لحظه خودش چنان از لطیفهی که میخواست بگوید طرق لذت شد که نتوان از آن را ادا کند پس از آنکه چند بار نفسش بند آمد و قبقبهای متعددش سرخ و شد گفت اگر شما درد سر حیوانات طبقه پایین را دارید برای ما درد سر مردم طبقه پایین بجه است. از این مطلک جمعیت به ولوله افتاد و آقای پیلپیمتن یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعت کار و بیکار بار نیاودن حیوانات در غلعه حیوانات به خوکان تبریک گفت در خاتمه گفت حالا از هزار دارم بیسند و گیلاس هایشان را پر کنند همه به خاطر ترقی و تعالی غلعه حیوانات بنوشیم." همه هورا کشیدن و پاکو بیدن ناپل چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلتین تن زد وقتی صداهای هورا فروکش کرد ناپل آن که هنوز سرفا بود اعلام کرد که وی نیز چند کلمه برای گفتن دارد مانند تمام نتخایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد گفت او نیز به سهم خود از سفری شدن دوران سوء تفاهم مسرور است مدتی طولانی شایعاتی عادی در بین بود که وی و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند مسلم است که این شایی از ناهیه معدودی از دشمنان خبیز که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند اجال یافت است هیچ چیز بیش از این مطلب نمی‌تواند از حقیقت بدور باشد تنها آرزوی شخصی وی چه در زمان حال و چه در ایام گذشته این بوده است که با همسایگان در صلح و صفا باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته باشد و با این مزرعه که وی افتخار اداری آن را دارد مزرعه اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است ملک آن متعلق به همه خوک هاست. بعد اضافه کرد هرچند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوء زنهای پیشین چیزی باقی باشد به منظور حسن تفاهم بیشتر اخیرا در طرز اداره مزرعه تغییراتی داده شده است تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادت ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب کنند از این کار جلوگیری شده آدت عجیبتر هم جادی بوده است که اساسش نامعلوم است هر یکشنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک ندی که بر تیری نست بود با احترام نظامی رژه می این کار نیز موقوف می شود و در حال حاضر هم جمجمه دفت می است. مهمانان وی محتملن پرچم سبزی را که بر بالای دکل در احتزازه است دیدند شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بر آن منغوش بود در حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود گفت به نطق قرا و دوستانه آقای پیلکینگتن فقط یک ایراد دارد و آن این است که به غلعه غلعه حیوانات خطاب کردند البته ایشان نمی چون خود او برای اولین بار است که اعلام می کنند اسم غلعه حیوانات منسوخ شد و از این تاریخ و بعد غلعه به اسم مزرعه مانر که ظاهرا اسم صحیح و اصلی محله است می شود در خاتمه نافل اون گفت گیلاس های خود را لبالب پر کنید آقایان من هم مثل آقای پیلشینگتن از حاضرین میخوام که گیلاس های خود را برای ترقی و تعالی مزرعه بنوشند با این دفعه بود که میگویم آقایان به خاطر ترقی و تعالی مزرعه منر بنوشید باز چون بار پیش همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند چنین آمد که امرین و واقع شده است در قیافه خوکان چه تغییری پیدا شده بود؟ چشمهای کم نور کلوبر از این صورت به آن صورت خیره میشد. بعضی پنج قبل قبل داشتند بعضی چهار، بعضی سه اما چیزی که در حال زوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد کف زدن پادا یافت و همه ورقها را برداشتند و به بازی ادامه دادند و حیوانات بی صدا دور شدند. چند قدم که برنا بودند مکس کردند هیاهوی ساختمان بلند شد با عجله برگشتند و دوباره از درزهای پنجره نگاه کردند نزاع سختی در گرفته بود روی میز مشت میکوبیدند به هم چپچپ چپ نگاه میکردند و حرف یکدیگر را تکذیب میکردند سرچشمی اختلاف ظاهرا این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در آن واحد تک خال پیک سیاه را رو کرده بودند دوازده صدای خشن ماکی یکسان بلند بود دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک تغییر کرده مطرح نبود حیوانات خارج از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند.